ندا موهاش چتری است و مانتوی بادمجانی پوشیده. کاپشن تنش نیست. ندا گرمایی است. خط سیها سردشان نمی شود وای که چقدر گرمم است. تقصیر مامان بود که گفت این پالتو را بپوشم. دون ویتو در پاساژ گلستان همراه دختری با موهای چتری که ساعت مچیش تلایی است با بند چرمی. ساعت تلایی به دخترهای سبزرو میآید دختر سبزرو خیلی مواظب باش که زمستان احوال گرمسیریت را بد نکند. نه شب مهمانی و نه دیشب نتوانستم آنطور که باید و شاید با ندا حرف بزنم. خوشبختانه ندا از این دخترهای ورور جالو نیست که هی حرف میزنند و مخ آدم را پایین میآورند. دخترهایی که میتوانند سه ساعت و پنجاه و نه دقیقه و هفده سانیه پشت تلفن یک بند حرف بزنند و میان حرفهاشان شهرام را به خوراک لوبیا و اپیلیدی ای و شوهر آزی جان ربت بدهند و با پرده ی گوشت کاری بکنند که مثل طبل های گنده یاماها که زهر تاسوعا از گوشه انباری ها بیرون می آید گروم گروم بکند چهار زربی پدر و مادر دار که اشکت را نه به خاطر ازاداری مذهبی که به خاطر ازاداری کاملا غیر مذهبی در می خوب خب ندایی حالا کدام بری برویم؟ انگشتت را توفی و بگیر بالا هر طرف که باد آمد مم. حاضر جوابی یک امتیاز مثبت است دخترهای ماست اصلا به درد نمیخورند. آن هم نه از این ماست های میوهی خوشمزه کاله. این ماست های کمچرب که اگر به چلانیشان یک درصد چربی هم ازشان در نمیآید. دخترهای ماست سکوتشان به خاطر آداب معاشرت نیست. برای آن است که هیچ کس یادشان نداده چطور با جنس مخالف حرف بزنند تا حال جنس مخالف بد نشود و احساس پوچی نکند. خیلی بد از وقتی به عنوان یک جنس مخالف با دختری توی گلستان راه می شوق جای شوغوزاغ احساس پوچی کنی. به پاساش ها بر می که پاهای دخترهای ماست سنگ را بسابند اما دخترها فقط به در و دیوار و ویترین مغازه ها چشم دوزند و لام تا کام حرف نزنند. جاست؟ پسر باورت می شود بغل دست تو و شانه به شانه راه می رود یاد روزهای سوپریازده 11 به خیر پاساژ فاز ۱ که تمام می‌شدند پیتزا همسایه بود که توی محبته باز میز و صندلی می‌چید پنج شب ها ندا و دوست‌هاش می‌آمدند و پیتزای مخصوص سفارش می‌دادند و آنقدر هر و کر می‌کردند که صاحب پیتزا همسایه مجبور می میشد از پشت دخ بیاید بیرون و بهشان تذکر بدهد آنها ظاهرا گوش میدادند ولی تا آگاه برمیگشت پشت دخ دوباره شروع میکردند به خندیدن پسرها را دست میانداختند و سسهای خرسی روی میز را به طرف هم پرت میکردند تو همه اینها را از دور میدیدی پَشَم به شبها از روی نیمکت سبزی که صد متری بیشتر با سر و صدای دخترها فاصله نداشت ولی نمیتوانستی جلوتر بروی آخر به چه بهانه‌ای دنبال شر میگردی پسر خواهر نیما فقانی؟ دخترها میخندیدند. سر و صداشان پاساش رو برداشته بود و ندا دست نیافتنی. حتی از دو سواری روی شیب شست درجه هم سختتر بود. باید شجاع باشی و خودت را به اون نشان بدهی. اما ندا اصلا تو رو نگاه نمیکن. ندا چرا همیشه پیتزایت را نصف نیمه میخوردی و همانجا میگذاشتی و میرفتی لااقل یک جعبه پیتزا خانواده میگرفتی و بقیه رو توی آن میگذاشتی و فرداسبح نوشهجان میکردی پیتزای سرد خیلی حال میدهد مخصوصاً که وقتی آن را گاز بزنی خاطری شادمانی دیشب برات زنده بشود ندا گلستان پیتزاهای خوبی دارد اما مطمئنم هیچ کدام پیتزا همسایه نمیشود پیتزای همسایه با فراموش نشدنی خاطر است خاطره پنج ها و آخرین دارههمی های دخترانه. آن سالها حتما همه مهمانی ها تان دخترانه بوده و پسرها به مهمانی هاتان راه نداشتهاند. لابد وقتی به عکس های آن مهمانی ها نگاه میکنی خندت می, کنی می گیرد. این چه ابروهایی است؟ پاچه بازقاله تو رو خدا دماغ یکی را ببین گفتن دماغ دخترها توی سن بلوک گنده می اما نه اندازه توپ بسکتبال. این لباس ها را من از کدام آشغالدانی پیدا میکردم؟ باید از چند سال پیش خودت بعدت بیاید ندا. <تصفح> پیتزا خوری؟ توی هوای سرد پیتزا خوردن مثل پیتزای سرد خوردن است. یک کم ویترین گردی میکنیم و بعد از گلستان میزنیم بیرون به طرف پیزا راز. نزدیک است. میلاد نور. پیتزای نازک واقعی ایتالیایی. ندا شاید مثل من به نور و رنگهای هیجان انگیز پاساژ گلستان دچار شده است. آنجا را ببین. چه بوت معرچه‌ای. بعد از چند دقیقه سکوت این جمله را بلند می گویم. مقدر است که من شروع کنم. چه بوت معرکه ای؟ پوست مار از نکند. پوست مار؟ رنگش که خیلی توی ذوق میزند. فلس فلس طلایی و فیلی. اما سگکش با هم از دست. سامان، لطفاً چشمت دنبال نیم بوت باشد. و ویترین هایی را ببیند که روی شیشهشان کمتر از بیست درصد سیل نخورده. می توانی به چشم های من اعتماد کنی خانم مهندس من فقط گفتم چه بوت معرکه یا جوابی از ندا نشنیدم و بقیه گفتگو را یک لحظه توی ذهنم ساختم ندا باید با من حرف بزنی من باید جرأت پیدا کنم که از تو با خودت حرف بزنم به تلپاتی اعتقاد داری؟ اگر به حرفان گوش ندهی من هم از پنشم به شبهای اکباتان که حالا شاید یادت رفته باشد چیزی نمیگویم ندا تای امشب می خوش باشیم. پس ساکت نباشو من رو یاد ماست کم نینداز. من خیااتیم. اگر حرف نزنی میروم توی فکر و خیال و دیگر در نمیآیم. طبقه دوم گدستان هستیم. ندا از توی جیب مانتایش کرد و بی حوصله ویترین ها را میبیند. بود یا نیم بود. میخوا بودی را که به نظرم قشنگ بیاید به ندا نشان ولی از عکس و عمله میترسم. می, ترسم. می ترسم که در برخورده دوم احمق و بی جلوه کنم. سمان، مثل همیشه توی خودت بریز مگر این چند ماهی که با کسی دوست نبودی اتفاقی افتاده انقلاب شد؟ زلزله آمد؟ اید دنیا رو گرفت؟ تو فقط یک پسر بیست دو سالهی و دنیا تو رو توی لیست انتظار گذاشته نگران نباش نوبت تو هم می شود آن وقت دیگر هزار تا شاختر از ندا هم نمی تو را نادیده بگیرند فکرش را بکن عکاس مود عکاس اختصاصی شانل و ووک انگشتر درشت علماز توی دست راستت میاندازی و عینک دودی فندی با فریم پلاتینی به چشمات میزنی و دماغ سر بالا توی خیابانهای نیویورک راه می روی نجات کجا را می گفت؟ آه توی برادوی و منحطن همه تو رو با انگشت به هم نشان می دهند. حرف علکی نزن سامان توی نیویورک هم که باشی ندا باز هم نداست مگر چند تا تو دختر توی کره زمین هست که سالهای نوجوانیت شب و روز به آنها فکر کرده باشی همین یکیست و تو به تک همسری اعتقاد داری همین حالا دیوانوازی در بیاور برو و دست ندارا بگیر و فشار بده و بیان که مکس کنی تونتون و یک نفس بگو من سامانم یک بار از برادر از سیری خوردم و از آن به بعد عاشقت شدم در عشق یعنی همه چیز بهتر است در دهان گالت را ببندی. تو این حرفا را حتی خجالت میکشی به خودت بگویی. آن وقت می جلوی این همه آدم بلند بلند توی صورت ندا بگویی؟ نه سامان جان. اینجا هالیوود نیست و مستقیم روانت می امیناباد امین امیدوار باشی که ندا بیاید ملاقاتت. <تصفح> مافیاها از هر حساری می توانند بگذرند. امیناباد که سهل است. تو به گال باید سر فرصت از استاد نجات بپرسم که از کنار زندان آرکاتراس رد شده یا نه؟ مثل آن باز معروف اسمش چی بود؟ مافیا، شب یلدا وقتی بیشتر مهمان ها رفتند و جمع خودمانی تر شد، دور میز نشستیم و مافیا بازی کردیم. من و ندا و لیلا و نجات و هفتش نفر دیگر. لیکور خانگی به همه یک حال اسمی داده بود و همه گلگون و آقشته به الکل دور میز مافیا نشسته بودند دست اول نجات خدا شد خدا یا راوی اس مهم نیست من به بازی گردان مافیا میگویم خدا اگر این سکوت نحس که نمیدانم خبر مرگش از کدام خراب شده سر و کرلش عین شبه وسط من و ندا پیدا شده شکسته نشود نه اینکه که بزند به سرم قاطی کنم و به ندا بگویم خداحافظ و بروم پیتزا راز و پیتزای نازوک پپرانی بخورم نه بی سر و صدا عین لاک پشتی ترسو میروم توی لاک خودم به بازی مافیا فکر می کنم و حالا حالاها حتی اگر ندا گریازاری و زاری و التماس هم بکند از لاکم بیرون نمی آیم. هنوز یک ساعت نشده ببین چه باغ وحشی رو انداختم کرم ابریشم ببر لاک پشت. اگر چند دقیقه دیگر این مزهک ادامه پیدا کند به گمانم باید یک کشتی نوح از جایی جای پا کنم و این همه جک و جانور را بریزم توش و بفرستم قله کوه دنیا دریای بزرگی می شود حیف که من جفتی ندارم که با او وارد کشتی بشوم و هیچ هم مهم نیست که نسلم منقرض بشود ندا این یک تهدید نیست به خدا من استعداد عجیبی توی لاک‌پوش شدن دارم خانم مافیا نکند شما هم توی سیسیل سوپ لاک درست میکنید آه نمایندگی پیر کاردن. من از اینجا برای عروسی خاله سپیده و شلوار خریدم انتخاب سپیده بود لاک پشتی با و شلوار پیر یادش بخیر باق شهريار. شهریار پلیس یک دفعه ریخت توی <تص> عروسی عروسی مختلط وسط باغ فکر کرده شهریار پلیس نداره؟ من و سپیده از دیوار باغ پریدیم بیرون و کاتم پاره شد. سپیده با هم و وضع و آرایش و لباس از دیوار پرید. شانس آورده بودیم که ماشین را نزدیک پارک کرده بودیم. سپیده مانتو و کیفش را جا گذاشته بود و نمیخواست مادرش بفهمد آمده در روسیه خالش. مادر خالش با هم غر بودند. قید مانتو را زد و سوئیچ را داد به من. من نمی‌توانم رانندگی کنم سپیده. گواهی‌نامه همراهام هم نیست. اشکاری ندارد بنشین. سپیده در بدترین شرایط به من اعتماد بنوز می‌د. دلم پیش سپید است موبایلم را از جیبم در می ندو دو سه مغازه از من جلوتر است میروم تو تو فونبوک و به شماره سپیده زل میزنم. جروه شستم را میگیرم تا دکمه کار را فشار ندهد قبلا چقدر کیف میکردم وقتی شماره سپیده را از تلفن خانه میگرفتم. گرفتم هایم آخر شماره تلفن روی صفحه شمارهگیر یک مربع میساختند. یک هفت سه نو روز چقدر بد بود زمستان داشت روی سرم خراب میشد. فصل لعنتی زمستان گورت را در اسرع وقت گم کن و برو یک شهر دیگر و بگذار تهران از این وارونگی هوا در بیاید یعنی چی دختری شمارت را بگیرد و دوازده روز تو را یک لنگ پا بکارد و با تو تماس نگیرد با کدام قانون برای این عمل وحشیانه مجوز صادر کردند وقتی شماره کسی را می‌گیری ادب حکم می کند برایش بلافاصله میسکال بیاندازی تا او هم شماره‌ی تو را داشته باشد باید وقایع را به ترتیب مرتب کنم تا بفهمم چرا این کرم ابریشم حرف نمیزند و من پشت چرا میخواهم بروم توی لاک خودم پلیس افتاده دنبال مافیا و مافیا میخواهد فرار کند اما از چنگال عدالت هیچ راه گریزی نیست چنگال نکند ادالت قاشق و کارد هم دارد؟ <تصفيق> آیا از آنها هم می توان فرار کرد؟ فعلا بی خیال ادالت. ترتیب وقای مهم و بدیهی است. بدیهی مثل اینکه چیزی توی زد نور باشد و نشود ازش عکس گرفت. اگر می خواهی سوار کشتی نوح بشوی و زنده بمانی، باید ترتیب وقایع را بیاد بیاوری. چند روز گذشته است؟ دوازده روز؟ خودش یک عمر است، ولی از چهار سال که بیشتر نیست. چهار سال است این کرم ابریشم را میشناسی؟ پروانه تأخیری ببین چه پروانه پروانه‌ای بشود کرم ابریشمی که چهار سال است دور خودش پیله می‌تند این بستگی به باغبان درخت توت هم دارد نیما باغبان خوبی نبوده باغبانی بخورد توی سرش آفت است لشکر ملخ‌هاست که به باغ توت حمله می‌کنند ملخ‌ها به باغ توت هم حمله می‌کنند حالا بگذاریم از باغ وحش و باغ ترتیب وقایع مهم و بدی است. پس از اول شروع میکنم. شب نشینی بود و شومینه خانه نجات روشن بود. نجات پشت به شمینه ایستاده بود و ها را پخش می کرد. کسی کارتتان را نبیند. شب شد، همه بخوابید. مافیا چشمات را باز کن. مافیا یک نفر را بکشد. مافیاها چشمهاشان را ببندند. پلیس، چشمت را باز کن. پولیس، مافیا را حدس بزن دکتر چشمت را باز کن؟ دکتر یکی را درمان کن. دکتر چشمت را ببند روز شد بیدار شوید؟ دیشب شهروندی عادی کشته شد. سامان کارتت را بده. من را مافیاها ها کشتند و دکتر نتوانست ندام کند. میخواستم حالا که شهروند شدم، مهارتم توی توی بازیخانی را به ندان نشان بدم جانور نر جلوی جانور ماده جولان میدهد. مافیاها دکتر را هم کشند. لیلا جاهد دکتر بود. من مرده بودم و چشمام باز بود. باورم نمیشد ندا مافیاست. چرا ندادست دست اول من رو کشت؟ شهروندان شک میکنند. مافیاها مجبور میشوند به خودکشی. ندا هنوز توی است مافیا برنده میشود. ندا میپرد بالا و به نجات نگاه میکند. خوب بازی کردم خدا. ممنونم خدای خوب و مهربان. ندا طور خاصی به نجات نگاه میکند. مافیا چرا توی دست اول من را کشتی؟ همین جوری موجه منفی میفرستدی. یکی طلبت مافیا نجات دست دوم توی بازی است و دکتر محسنی دکتر قلب لیلا خدا می شود روزها ندا چشم از نجات بر نمیدارد. ندا این نگاهات به نجات معمولی است.